تا حشیارم ترفز من پنهان است، چون مست شدم در خلدم نقصان است، حالیست میان مستی و حشیاری، من بنده آنکه که زندگانی آن است. ترکیب پیالهی که در هم پیوست، بشکستن آن کجا ربا دارد مست، چندین سر و پای نازنین و, کف و دست، از مهر چه ساخت و کین چه شکست. تجل عجل و وهم فنا و مستی بر برنز پنا شاخ بقا خواهد روست، تا از دم ای شدم زنده به جان، مرگ ابد از وجود من دست بشست. چون لاله به نوروز قده گیر به دست، با لاله رخی اگر را پاشت هست، مینوش به خرمی که این چرخ کبود، ناگاه تو را چوباد گرداند پس